توش مثلا دعا خونده باشه دعا خوندن میدهدن مریض گفر و بیشه از داره یه چیزی شبیه بود میگه این جام رو نگاه کرد و دید که میشن که چاهیز در توران رو روستن و فاور روشنی ها رو به اون کار داره محال جام ماله که خود روست و خود خاجه هم اشاره میکنه کنه بعدی جاها به جام, جام که خود رو که گوی خوبی بردی از خوبان هم خندلخ جام که خصوصیلا جام جام جهان جام گی دی، جامی کی تینامان همه کرد. جام که بر اولان که جام شاهد محسوب را از رو نگاه کرد. جامی کی تینامان چه دوبر و مصد و غروب جام گینگین و ماهو خاکرن همه اینا ولی چرا شده جام جم دو دلیل داره یکی اینکه که کسی که شعاب دام شعاب درست کرد در داستان ها معروف است که جم شده به همین دلیل جام جم جام دلیل دیگه که از این قشن کرده و درست داره این است که جام و جم تناسب لفتی داره در حالی که جام و که این همکه این تناسوبی نداریده همین دلیل جام معروف شده به جام جام که داری موزیکش و تناسوبش زیادتر در هر حال جام جم میگه دل آرف بطور کل کنی جام هم بگن همی بنده گفتم آرف در برابر اون موزیک مطلق اگر بتونه دلشو از آلائهش های جسمانی حق بکنه اون وقت و عشوب در اون تجلبی می این مسئله اینه عکس روی تو که در آینه جام افتاد آرف از خنده می در کمه خام افتاد اینه این اصلا این حالا عکس که خنده دهن جام باز همشه گرده بحثه که نمیشه. به همین دلیل شدیه دهن معشوقه که میخنده در موقع باز ده. حافظ بارها به خنده ایجا میشاره میکنن یکی نیست می... میگه در دل خونین شراب کلمه که تو جام هم بنابراین دلش خونین رنگ خون. با دل خونین لب خندان بیا بر همچنه جام دلش خونین لب خندان نگر زخمی زخم میرس آیی چنگندر کروش دون غزل دوش با من گفت پنهان کاردان تیز کروش و چوافه پنهان مشاهد کرد رازمه کروش گفت آسان گیر بر خود کار خواه خورو. بس روی طرف سخت در تلکی برمزوان سخت اونجان که با دل خونی لبه خندان دیا بر بس و خنده میل جام که بارها و زنبی ها که توبز لعله نگار و خنده جام تصبریست که عقلش نمی کنند پس. خنده جام و خنده می که در جام هست او سنگه عکس روی تو بود تو افتاد در جام می یعنی در دل آرف و عارف پیش خودش حوض کش و کرامات کرد و تک همه چیزی که دیگه در سمه خام این دیر این که عالم یک پرتوی از ذات حفظ این حرفا خیلی جاها هست و مربوط و حافظی، حافظی اصاره از این قضایات یکی از جاهایی که این ظاهری به این نداره ولی همین مطلبه در منطقه تایی درداری این در منطقه تایی که مرخان همه انجامن کردن و گفتن که همه جانوران، همه مردم، همه تواید و قباید شاه دارن ما چون شاهدش. گفتن ما بایدی شاهدش دوش اون بار ما رو ترتیب بده اون نظام بدون آقا در کردن بعد هده هد به دلیل آزمودگی را میگم آزمودگی چی بوده گفتش که شاه شما سی مرگه و اینجا از سی مرگ حالبته ذات هسته بازی هم میکنه با این تارکیب ندارم حالا بعد شروع میکنه به وصف سیمور مرگ وصف ارفانی حالبته از سی مورد. بعد میگه یک دونه با یک فروغ از یک دونه پره اون در چین افتاد این همه نقش چینی چون نقاش اون در اسلام که نقاش ممنوع بود دید. هرچی نقش اون روزی صورتگرینه بود در چین بود یا در روم بود هم یه دسته داره که صورتگران چین با صورتگران روم با هم مساعده دیدن من میگه یک دونه فروغه نقش پر او به چین افتاد این همه نقش از اونجا پیدوشه و بلیل این هم که هدهد و راهبر و راه نام می کنن این بوده ای که هدهد نامه سلیمان پیغمبر رو برده بوده برای بلویس و این نامه با بسم الله شروع می شده این هست که یک کسی که بسم الله در منقارش باشه چون منقاریش دو برده بنابرای این راهبری به هر حال این مسئله که همه یک پردوم یک پردوم از ذات هم برد و خوب و همه این کسرت یکی یعنی در ظاهر میبینیم حسن است و طبیعت و عدی است و سگ و گرگ و گافه و پوستنده و درخت و ب... ولی در اصل یکیست یعنی وقتت است در لباس کسرت تجلیم. یه سچات بیگر سائب اینو به بهترین صورت ممکن توضیح میگه آن به دل نزدیکو دور از چشم آن به دل نزدیکو دور از چشم که از در جهان است و برون است از جهان تیدا است. ریدی یوسف شناسان در اوار کثرت‌اند ورنه یوسف در میان کارمان پیدا نیست در چه پیدا و نهان نمیشه کسی هم پیدا بشه هم پنهان بشه در چه پیدا و نهان با همه‌ای گردن آن که پنهان است و پیدا در جهان پیدا اول احبال بیوانشم ساید یه بیده میگه در هیچ فرده نیست نباشد نبای تو آلم پرست از تو و خالی میگنی این دقیقا تصبری سویی ارزا که هفته شده حالا همین مطلب رو به هزار زبان گفتن اکس روی تو تو در آینه جام افتاد عارف از خنده نهی در تمه خام افتاد جلده ای که افروخ از روز اول زیر نواب این همه نفشتر آینه اوام. یک جلوه که زیر نواب بوی تو کرد این همه نفشتر آینه اوام افتاد هر کسی دنبال یک حدیث هم در زنداری طرق الوصول الالله و عدد انفسن خلاق من اینو میمیسم برای این خیلی چیز مهمی طرق الوصول الالله و هم دادن فصل خلایی یعنی راه های به خدا به تعداد پرفض مردم این همونیست که باز در غصه موسا و هم که یه طرق که اینجا حرف دادم و دیگه تکرار نمی کنم به مولانا و مولانا بهم که هر کسی میتونه به یه راهی به یه روشی به یه خودش با خدا یه راه داشته باشه این که میگه که جرده ای کرد تو خط روز ازن بیر نخاب این همه نقش در آینه او افتاده یعنی هر کسی خدا رو برای خودش یه جوری تصور کردی، یه حساب کرده یه کتابی کرده همه دنبال تو اصلا حتی در قرآن گفته میشه که گفته شده که از بای میگن که بیپرشن که شما برای چی نیفرستیم مگه نمیدونید که این سنگ این شوبه این چی نیف میگن ها اولای شفاها اونا ایندالله الله اینا شفیع ما هستند در نزد خدا یعنی باز به خدای خالق نادیگه ایمان داشتن منطقه این رو اسلام قبولنگ نمیکرده و گفته این شرکه به همین دلیل هم هست که هران حضرت تحباسم اگه بگی ای حضرت تحباس مراد منه بده این همونه وقتی به اینجا اگه خدا بخواد حضرت تحباسم به ذاره درست میشه این همونه در, در حاوی گرده‌ای که رخ است دود از اثر نیروات این همه نقش سرآینده او هاوندات این همه عکس می و نقش مخالف چه از این و چه از اون باشه که تحت رخ که بالا و پایین هر چه هست هم این همه عکس می و نقش مخالف که نمود یک فروغ و روق ساوی است که در ده روشن دیگه اون پیتبه به چیز که یه بار نمیدونم بحث که از این یا نه توی اون فضل معروفش که تهتر از این چه میگه بروگ خوشت تو هرکی زباب سوا شنی از یار آشنا سخن آشنا شنی اونجا میگه که سر خدا سر خدا که عارف سالک تکت نگم در حیرت که با عد فروش از کجا شد و بس معدی قزل درجه که در زمینه که توضیح میده همه این مصدبو روشن کننده همین بحث منه من قزل بمیخونم میگه آستین بر رومی و از این آستین های عیون های اعیون بشاند و بلند توی که میگرفتن تا اینجاشونو میگرفتن این حسن نبینه که او از دنبال و نخی جد میان آسیب کردند. کیستان جهان در کنچی با شو خان خدا دسته بشه تا لذت این پیت این خاجره ببری خیرتهش زبان همه خوابتن ببری که از کجا و دمش در دهن آن هر کسی یه تفقی از خدا داره یه حسابی با خدا داره یه بعضی تعدیب میده یه کباری با خدا داره ولی اون کسانی که درست تنبال این کار دفتن ما تو این دریم امنی خوشم چفکندهی روزام زبان آم خاصند را زبان هم کندهی خیرت لاجب غیرت عرض کردم خیرت به وحنی رشک رشک به وحنی حسد نیست غیرت همون است که آدم وجود داره که اگه بینه زنش روی کسی گرم گرفته حتی نه این که کار بد بد بخواد بکنه خدای نخواسته خیلی همینقدر که بیبینه که مثلا به حسار معبدی کسی میکنه ناراحت میشادن بگی کنی که دل تو باید همهش در اختیار من باشی دار. من باشی اون است انحسار دلتی اونو بهش گم دیدن و تحقی بوده یا عرب از اصحاب ایغمبر که معروف بوده سعد غیور یعنی خیلی این حال رشد برش قلبه اشتی حدیثی از همبر نه باشی. که صد غیور هست من از او غیور درم و خدای تعالی از همه غیور میتارم فگرد عشق زبان همه خاصان ببورید یعنی اون کسانی که راه ددنشون دحریم خاص اونا دیگه حرف نه زبانشون بوریدن باز یه حدیث داریم من عرف الله هم نلسان بله دقیقا دقیقا من عرف الله ولی لسان را. یعنی کسی که خدا را زبونش از کاریو قیرت عشق به همه خاصان ببرید که از کجا سر قمشید در ذهن آم افتاد من ز مسجد به خرابات نخود خود افتادم اینم از عهد عذر حاصل فرجام میگه من از مسجد اگر به خرابات هستم خودم نراستم سرنوشت من این بود امروز سر کلاس خاییم دیستان دانشتوی عزیز همین بحث داشتیم راجب عقاید محتضلیه و دو تا مکتب فکری بوده هست در اسلام، در آقاد، در قرنهای دوم دو و ثبوم که اینا تیاله از بین دفتر هست. ولی ردبای فکرشون قرنها باقی مونده هست بیشتر به مر حدیث و به درست محنی تهدل لفظ حدیث کار داشتن و معتضل به عکس تردگیره بودن بیشتر احل تفکر میدن و همین دلیل اشاره معتقد بزن که سعادت به شهاوت نیست خدا هست. سعادت به بخشایش داور است. نه در دست و بازویز دابر هست اگر خدای نباشد زبنده این صفایت همه پیغمبران نداره گناه نبود و عبادت نبود و بر سر خلق نوشته بود که این مقبل است آن مرد توی اینش از منو دو بار روخ جانها کشیده هم تقراب نیچ بختی و نید بدختی وح نظاهره این همینه که حافظی که میگه من اگر از مسجد درستم به خرابه که خودم نرفتم سرگوشت من از میوان رسمت خبر من از من این و اشاره اینها تکیه اینها حدیثیست حدیث های نظاهر این هم هست البته که از سعید و سعید و صیبت نمه و شفیدی و شفیدی و صیبت نمه خستخت در دوابی شکن ماهرش خستخته و بدبخت در شکن ماهرش بدبخته البته به این اعتقاد کردن اجبالی نداره بزن. و خدا گفته ما هم که اون از اون بارید سر اما از طرف دیگه اون وقت کسانی که شروع کردن, ای چون چرا کردن، به این دلیل بوده که گفتن خب بربان اگه اینجوره اصیب بهش تو جهنم دیگه چیه <تصفح> بابا رو بست بست تو جهنمی آخرید بست کار آخریدی این که محصول عملش نیست گفت خدای راست خوی هم از توست ولی از دست ندوانم چکلیدن لب دندان درخان خطا را بدیم خوبی نباید باید که از دست لب و دندان به دندان دستالت باید گذیدن با خدا یا اگر به روی خدایی تیندت انسان همه جمیل سرشدی طلعت رومی و چهره عوشتی را مایه خوبی چه بود و علت زشتی؟ از چه سعی و از چه شغیی شد زاهد مراقی و چه شکنش نعمت منهم چرا دریا دریا محنت مفلق چرا کشکی کشک والا خب گویا در کار خدا فضولی جایز نیست و هر هم کردین هم. این مسئله مسئله جبر و اختیاری که هی ازش بهم گردن و البته به اینجا نرسیدن و اینطاق میامدن و ازم جای نمیزن درست همینه تو میگی چقدر بالاخره مادر این کارا مختاری میماتوره آها چه مختاریم من, چه من که اول گفتم که پخمه تو دو نفر به تو تا باشم بتونه رضایت تو یه باز هر کس گفتم اسکی اینجا گفتم که هیچ بچه‌ای هم در دور بچگی از باباننش راضی نیست اگه شاه باشه میگه یه باش بابام مثلا بقار بود یا چلویی بود اگر باباش سفور باشه میگه خدا ما یه لوقا نون سیر نواد می‌کردیم کاش که بابام سلاطین آزداختی بزرگ شد، آز رس شد، ما میشه همه که این بابایی که داشته، همون بابایی خودشه ولی نه، جمام میکنم در دوران کنجاکی، هیچ بچه ای از که درماهر خودی ترسید ولی به هر حال یه اختیار آدم، تخم آدم میکنه در چه وقت؟ باز اختیار آدم در کجا؟ بازم بی اختیار آدم بچه که دون بحیدهش دخونش کاشته میشه، هم شد که دخونش کاشت شد، صد سال دیگه توش باشه میرسه تو که یا اون زبونت رو انتخاب نکردی یا صدر ماده رو فارسی زبان بود دنیا مال شما بود. اگر از ماده روسی بود دنیا مال روسیه بود. اینه تو اون انتخاب نکردی صدر تو شیعه مرتضایی بوده یا شما شیعه شدی. چند نفر تو این دنیا هستن که پیششونو عوض کردی؟ واقعا از هر یه ملیونی نفر نیست <تصفيق> <تصفيق> یه به یه دینی به دنیا بیان دارم به دین. خیلی دین آده ریست در تمام مثلا عمرتون سهاد دو نفره نبیان با همه بر دین پدران شد بنابرای دین که تو که نوشتن من یه وقت سب شناسی در خیلیم در دانشبایت ایران گفته ها مساعدت کن که خب به هر تا دیده من خواست میمیستم بنده هم راسته بنده هلا اگه عبالمعالی که دیده او درنه چیز که نمیستن کسی که جلوم نمیگیره جرم هم که نید حاملان هم حاضر هم که نمیستن ولی چه نمیستن؟ دلیلش اینه که من میخوام نمیستن مردم بخونن مردم نمیخونن بها ولی من نمیستن به زبونی میگنی یعنی اختیار نمیستن و اگر در دوره عبالمعالی زندگی میکردن مثل می که مینوشتم میگفتن بحفت چند شده حالا بینیم صرف کرده میشه این الفاظ رو بکنه به این ترتیب باید درست میسه آجام که نمیشه یعنی که حتی در مورد سخت که شانا اختیار نداره و تو داخره هم خیار هست و, و آزاد هست بخواد بره حضور خود هر کار بخواد بکنه این بعد همه این بعد اصلا از اینجا سکینا راحت میگوشن اقا جبره یه ساعتی اومدی ای این ساعتی هم میریم بای ولی اشکال اونده اینه که میگه خب این پس من او با. بر چون گناه کرده بودم قبلن پولول که آنو باید برم جهنم با یه باشه باید این متقیده به عدل به خدا عادل است به ظالم نیست عادل نمیگن خدا میگن عدل خدا با ذهن ما و قابل سنجش خدا وقت خالق موجود دارد به کار خاص اصلا اونجا مزئله از اون مزئله است حال بگذاریم کنم که این که میگه که من به مسجد به خرابات نخود افتادم افتازم اینم از عهد ازال حاصل فرجام خود دنباره همون فکر عشعری است که قرنهای متوالی از همون قرن دو قوم و سفن روزی که تشعیر و در ایران رسمیت دلیکر از این فکر حاکم بر مولانا حاکمه بر قبل مولانا حاکم افتاد، فنهایی، دیارون، سعدی، حافظ همه نظرشون همینه و این نه تنها در مورد آخرتی بلکه در مورد حتی دنیا و در مورد مثلا فرض فرمایی که تربیت تربیت حضیبی آدم در, در زندگی این آران باز نظر باشد بعدی میده هست به بعد نیمونه گرده از که بنیادش پره ترمیت ناها هم را تو میده در کن بر کنم پره الان این عقیده هم نجره. الان مخالف این هست ولی خب مدتی همین بود که تو حافظ میگه تا چه زاد تا چه شاهی تلبی گوهر زادی به نما بر خود از تخمه جمعی به خیلی تو مختهب به نظر نیستی به سال مجور که جام جام نده هم سوزگ بنابراین کار به فقط آخواهات هم فهم نمیشه دنیا رو هم نظر تربیتی ایناست این بوده که کسی ازافه فرق بود این وقت تربیت نیست ازافه فضیر نیست اگر یه وقت میدیدن چی آدم که به نظر نظر فضیر نبوده تربیت میشده میگوشن این از اول خوب بوده و سرنامه شدعبال این بوده که این درست بشه اینو که شده و باید اون ازافه من به مسجد خراب آمد خود افتادم اینم از عهد عزل تاجه به و عبد بحث مفصل کرده این دوستان که نبودن که نبودن که محضورم من نگوید اینم از عهد عزل حاصل پرجام کرد چه کند که به دوگران نرود چون پردار هر که در داوگیره گردش را اگیام داد اینجا پنجاه جور بازی فرگار دو تا پایه داره که میدونین یه پایش ثابته در مرکز یه پایش میگرده این با هر کلوم اینا هزار میگوازه اولا این کار دوران دیگه است یعنی می فرگار میگرد دوران میزن میگه چه کنند که از پی دوران نرود فرگار از طرفی که دوران مراد شنوزگاره هر که در ناویره اعتباط پناسب داره و پردار. گردش حیام و باز چیزای دیگه داره مثلا فرض که بیگه که پس که آقای فرزاقی دیر میاد بگم حالا میاد حالا میاد که سوال کنه هم بکنم که حالا میاد یعنی این وقت نمیاد I couldn't borrow <laughs> چی کشتی من هواپی مای من نمیشن زهر مار من همینه این بطلی این که میگوید که اگر فهمی از جان هفر سیر باید اون رو هم با روی گشاده استعمال کرد برای سعادت خود آدم این دستور العملی که قبلا هم این فلسفه رباهی تویزیان ها میدهدن میگفتن که هیچ چیز باید جنسی فراباقی باید خود خرید کنه که هیچ چیز آرامش روحی او رو به هم نده نه از هیچ حادثه بهم می بشه حادثه سختی قمکن می شود میگن که یکی از فلاسسه یکی از روحظای این مکتب یه بردی بوده برده زرخری بوده به نام اپیتتتیس این اپیتتتیس فراب داشته خریده یه روزی عربالش بعد این و شروع میکنه یه شکنجه کردن اولا نمیده هست فکر کردین که شکنجه از مصبر شکستنه برسه شکن از مصبر شکستنه بس شکنجه یعنی کاری که شکستن و پا یا دست رو تو پی و میتونن تو گیره وقت شاد شدن راهی هم درد شدید وقت موقتش رو راهی هم میگه این اپی که تو پا شو گنه شد و این زاری نمیچن همون بعد یک لحظه به تو گفت اگه یه ذره بشار بزید. پای من میشکنه ها احباب فکره که عقیم. برای فایده برای شهادت خود اون شخص بوده زیدشنش یکمش رخص کنان باید رن کان که شد کشته او نیک پر افتاد یعنی شد اینجا نیک انجام شد اینجا اگر شما دانش توی بودیم کل بودین براتون فیل تام و فیل ناغه توی رو از توری که این افتادن اینجا فیل فیل تامه فیل تام نیست ولی فعلا میگذاریم برای به اون مطالب با یه دور شنیدن درست نمیشه و شما هم اینجا با یه دور شنیدن این مطالب کاملا یاد نمیگیریم همونجوری که هماتون یه مداره رو سهی کردیم در سوندن میتونید که درسی رو که آدم خود بکنه یاد بگیره باید بارها بکنه و باید ادام بده و پس کنه تا ملکش میشه با یه بار نمیشه بنابراین مسائل پرگی رو ازش میگذار در همه دلت تو آمیسته از چاه زنه آه از چاه، قرون آمد و در در چه زنف اون یه <تصفح> <بودیه. تصفح> که بر بعض زنفدان ها هست و قدیم پتندیده میداشتن حالا هم فشت نمیتونن که هم بازم زیبا باشه به هر حال به دلیل هم خرورتگی سنار تونه گاهی زنفدان رو به سیبم هم می‌کنم. میکنن و چیز می که شجریان که حال عجل بعدی باق تفروج است و بعد میبه نمیدرد بکر به نظر نمیرسد سی به درخت فرمتش یعنی فقط میرسد سی به تماشا کرد یه جای دیگه سریعتر از این میگه بعدی میگه گفتم ای بوستان روحانی دیدن میبه تون گزیدن نیست میبه خب دیدنش بشنگه ودیدنش بشنگتره گفتمه بوستان روحانی دیدن میده چون گزیدن نید گفتادی سیال خیبه با. سیب سیمین برای کیدن. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و در همه ظلف داخل دل از چاه زنخ آخ که از چاه اون آمده در دام داد دام ظلف که دوزه چیزای خیلی معروفه و گفتم که بین اروپا دلپ و زنخ و خال و چشم و عبرو و عرب از اینا یکی سموله و, یک و معنی‌های خاص داره که برای اون معامی خاص وجود بفرمایید حد اقل حد اقل به گلچن راز شکر معمول چه رستارید که بعضی فرهنگ‌هایی که هم هست دادای تحریکات نیرسه هست دفتی ارخانی تا اون تاریخ تصف در اسلامشی مهداری از این اصطلاحات تصف معنی کرده اونجا رجوع فرمیدن اینکه ببینید که مراد احل ارفان از ظلم و از چشم و از عبد و اینا چی آن شد ای خواهج شدن به عنی رفتن. هنوزم در دوحات ایران شدن به عنی رفتن به قابلی بشو یعنی برو با اون تصدیق هم که, که اون تصدیق رشدی بشو بشو من تو رو نخوام بله تو سیایی من تو رو نخوام بل. بشو یعنی برو بله بله فرابونه آن شده خاجه یعنی اون دوره گذشت اینو من هی تکیه کنم برای اینکه همیشه یک بخوند آن شده خاجه یعنی نمیده اصلا اصلا معنی نست آن شده خاجه که در صومه بادم این دیگه منو در مسجد و جای ریاضت نمیلیم تموم چون دور گذشت کار ما باروخ سابه دلال جامعه هر دمش حالا اینجا اظهار شادی میکنه از او یا فوتوی در بکارس این که چیزایی دیده بوده یه هر با من دل سوخته، لطفی دگر هست. این جدام این که چه این آم در حالی بوده که توفیق بده که و در راه که میرن خودشی صوفیان جمله حریفند و نظرباز میگه همه این صوفیان همین جوره ولی نمیم که که من همیشه برد صوفیان جمعه حریفند و نظرباز ولی زینمیان حافظ در صوفه بدنام. خب این است. اول هسته اولا شعر صوفیانه شعر دربای شعر مردم شعر خانقا شعر یه حالا که سخت نبودا این زبان اون روزگار بوده و در مورد مولانا میگه به مولانا یادت می‌گرفتن که مریجار اسم همه از محترفه محترفه یعنی اهل حرفه یعنی بقال و چققلو الکسوس و فجار و آهنگر اینا می‌مدن این معنی اصلی رو نمی‌فهمیدن دیگه میفهمیدن بعد دیواصل مهم که به 50 سالی اینجور شده من یادم میکن. به خودم وقتی در بستان رفتم نرار این بود که ما قرآن رو تا کلاس چارم ابتدایی تمام کنم سال پنجرم که شما ابتدایی سرپونه تعلیمات دینی مفهستن بعد مردمی که مکتب می رسن که قبلا اول قرآن و بعد مسائل شرعی و شکیات و سهمیات و مسائل مربوط نماز و مقدمات نماز و مقارنات نماز و اون که به عنوان تکلیف شرعی خودشون میتونستن اینا رو یاد میگرفتن و من خودم خوب بیادمه که وقتی که میخواستم قرآن بخونن دو کلاس ابتدایی چهار ابتدایی چهار ابتدایی سال زدستای ده بیخون بلغ الالام کمالهی کشفت دجاب جمالهی هستونت جمعی و خسالهی سلو علیه و حالهی بعد همه سلوات برسند برسند برسند بنابراین اون چه الان به نظر شما زبون و سختی ها عادیمه زیادی به دلیل فراموش شدن مقدمات فرمود دین و تعلیمات قدیمیی که بوده به نظرتون این انقدرها هم مشکل نیست و علاوه به کسانی که دنبال کاری هستن میرن و من خودم تو قعب دیدم کسی رو که همین حافظی که شما ما رایده میترمایید باید داشتن چارپنگ کلاس سواد آواز خوبی هم داشت چهتگری مثل این آغاز خیلی خوبی داشت این جبونی ما زیر سال بودیم میماید قربونه بود سر پول اونجا و آخر شب این خون صداش باقعا یک پرسهنگ میرن تقریبا حافظو بیقلق این کسی علاقه داشته باشه دنبال کار میره باشه. روز زندگیشون بوده و بعدم چیز میکرده بعدم میرسیدن خب یک من در اجزی بگیر نفسی کازه کن دودی ها برن از روی از روی اخوانیست یعنی اخوانی نیخوشیزی یعنی نامه های خصوصی تا اشخاص با هم رب دو اگر می کنند با غذای فضلشال هم می اخوانیات اگر مثلا یه عدیبی باشه که با اترافیان و دوستانش مکاتب داشت ویسای مکاتبه رو جمع کنند و بعد از مرگش یا پیش از مرگش کنن، کنند اخوانیات نامه های اخوانیات که باشه این تحضیب اینا رو قطعات اخبانی اخبانیات در مقابل اخبانیات من که کتاب از بوده نقطه مقابل سلطان دو تا قوام الدین محمد صاحب ایار صاحب ایار یعنی ریز که, که،, که،, که دوره مثلا مؤیر. مؤیر یعنی کسی ایار عرض کنم که ایار که البته در اون روزگار طرافان خودش سکه می‌زدن یعنی فارق دولتی نبوده ولی یه کسی به هر حال بوده که مواظب باشه که شتاب نکنه یه وقته زرگری بیاد مثلا 50 درصد به جای 70 درصد درصد بزنه این دوزیه پول رو بردم میدوزید درایی بعد اینکه کسی بوده که, که این قوام محمد, محمد صاحب عیار این بوده یک قوام الدین دیگه داشته در دوره حافظ قوام الدین حسن حالا هردوش از جهد دوپن من احوالشون درگرم که قطعون میگم ولی باید اعض بکنم که از تصادفات روزگار برای اینکه روزگار هم بسیطه بازی به دست این ساهر سخن واقعا این آدم سخن بده بسیار از این چیزا بوده دو تا دو تا قبام الدین داره نمیدونند باز چیزایی دیگه بوده که سه تا قبام الدین بوده یکم قبام الدین عبدالله استادش بوده که اسمی نمی بوده یکم قبام الدین حسینه بعد این کاجب با اینا حاضی میکرد که و کاج این قوام الدین گمان میکنم که اون قبام الدین بوده که خاری خارش و جام متحصمانه در اثر سر توی زن و خیلی خیلی مورد علاقه خاده بوده به نظرم قوام الدین محمد الداریستان اجازه بدین الان خدمتون میگم مرز که قوام الدین حسن هست به جال مهم دوری سرزد شاشه غبال ها این شخصی نو حاجی غبام اون مجلسارای جهان افروس اون حاجی غبان اینه که به نام حاجی غبان صاحب غبان و شیخ را به تنهاچی خانده میشد به کرم و خیرات و صفت پتندیته مورد ساچو احل شیراز هم و از همراهان به خدمت بزارم شیخ ابو بوده و چنان که از صحرات اون تامن اداره امور مالی شیخ ابو احناف بر افته داشته حافظ از نزدیکان این شهست بوده و در چند در ضرق از اون رو و خیلی هست چه او در از سال 754 واقع شد یاد که باشه که حافظ 792 درگذاشته در چهل سال بعد از مرگ این خوامدین حسن بوده معنی چیه این حد؟ اینه که هر چی شعر راجع به خوامدین حسن گفته از سیرای دوره جا بوده. در زمان او جوان بوده چنگ از فعبای غزنهای مردوس با اونیست مصطفی بوده تمقاچی تمقا, تمقا اسم یه محر قرمز رنگی بوده که به عنوان رسید مالیات میزدن روی بسته هایی که باید مالیاتت شده و پول میگذیم این شخص رو بهشون رفتن تمقاچی پول مالیات هم رفتن ذر که اون چیزی که بیشی که خاجهات داره که برای که نیست ره رح و رخن لقم فریزی چرا مذمت رند شراب کنه در یه نسخه ازش برای که از ذره تمغاف ساز و برگماش یعنی از اون دولت که بسیار مردم میگیره من نوم میخورم چرا مذمت رند شراب خاره کنم نسخه اینطور برهای آقوینه با اون چند در حقیقت در حکم وزیر دارایی یا رئیس دارایی یا نه رئیس پول مالیات به بالاخره کارهای مالی زنده شد این قوام الدین حسن هم برده اون دو مه محمد صاحب ایار بوده که این قوام محمد صاحب ایار رو یک قاضی بسیار سرجوی یک هم حافظ برای سلطان حافظ ستاق است بیشتر نداره یکی در معنه این آدمی از این به دل فریغا تمام داشت تا هزار در این را بخواستم این نفاقان ساخت تمثلش خامی هزار از که در دلی به هنر را به گنجا چهگار ها چه برکی چیز هستی من ما پس سمنند که تیز میرامی به هم نشینی رندان بر این فرود آخر که گنج هاست در این بیگ سریع و سامانی بیار باده رنگین هیه که گایت فاش بگوزگمون بکنن رهنه در مسلمانی به خاک پای صبوی کشن که تا من مست به کنگ میکده استادم به دربانی به هیچ ظاهده ظاهر زاور کرد نن که زیر خربه نزن نار داشت. به نام طره دلبند خیلی خیلی کن کتاب تا خداش نگه از پریشانی بعد دیگه مگیر چشم انا یک ظهار حافظ باز اگر نه حال بگویم به آفظ حسانی قوام و دنیا محمد بن علی که می درخشدش از چهره فر یزدانی چه که چه و چه بعد بهش میانم چه خیلی رابط نزدیک بشن. یه که زما یاد میکنی گهدام ولی به مجلس خاص خودم نمیخوامی طلب نمی کنی از من سخن جفا این است اگرنا با تو چه بحث است در سخندامی ز جهان کس تو بنده جمع نکرد لطاقی پیده کمی دا مکان به بعد منت میذارد درشت هزار سال بغا بخشد از راست هزار سال بغا بخشد از مدام گره من چون این نفیق مطاعی به چون تو ارزام یکی کالای به این خوبی حق به تو این قوام دین صاحب ایاره که بلدارها ارپنزاده هزار نرز بازار کالینات دارن یکی به سکه صاحب ایار ما همه ارز کنم که این بیشاره رو به خارج خار شاه شجاع پشتش و در ضد شماله 108 بیاید که همین رو که خوندیم به اعتمال کلی در مرزی خاجر قوامدین محمد معروف صاحب ایار سروده شده است این قوامدین محمد صاحب ایار بسیار مورد علاقه حافظ بوده و خودش هم مزی آزاد تک و وزیر زایر و کاردان بوده بعد آغاز نزد شاه شجاع تقرر و داشته و آخر کار به فرمان شاه شجاع به در این وجهی شده یک خسیده در منطور دارد و در چند به نام او اشارت کرده و یک قیده هم در صحصف کار که روشن باشید که سید آن که رو رنگ و دار. گفتم بارها دوباره میگم کل به معنی گل طرق اسم خاص یک گل و گل‌های دیگه حس بوده بنابراین اگر اینه بگیم گل نسرین چنان که در بعضی مصاحبات آنکه رفتاره تو را وقتی گل نسرین آنکه رفتاره گول تو را وقتی گل نسرین دولت بلد برای که در اون روزگار نمی‌گشتن گل نسرین گل یاس گل بنفشه گل یعنی روز همین باقی غلام اسم داشته بنفشه و نسرین و گل و فسانه و بابو آن که رخصار طورا رنگت گل و نسرین داد سبر را، آرام طوانت زمانه بسید داد خبتم نمیدونم براتون یا نه مسکین در اصطلاح شرعی معنی معنی است که دخل کفاف خرجشو نکنی یعنی درامت داشته باشه حاجزم نباشه کارم بکنه ولی دراماتش به خرچ بچی زیاد بسید میشه اوش خرچ اینها رو تأمینه از تو خرچ عرقش خیره اونه کازین و اونه خیر ها هر سن از اینه بشه میگه مسکین و یکی از یکی از کسانی که مستقید به دریافت زکار فرن مساکین مساکین با فقران فرقشون اینه فقیر و مسکین با هم فرقشون آن که رو خشون. بله، من تو اینجا، اینجا حلو، اینجا فرقو میvast، چرا واو آنکه تو را رنگ گل و داد، داشت، تو آرام طهونت من مسکین جان، آنکه گیسوی تو را جا به تطاول هم حق طهونت کردمش، من غم داد از طول و گیس رو هرچون بلندتر به معنی دراز دستی است و دراز دستی یعنی زول دست به بله دست دراز داشتن. دراز دستی یعنی ظلم و دست و هر چیزی اینجا میگن دراز و میگه صوفی پیان پیما حافظ قرام برداز ای کوتا دینا پاکنگ راستن یعنی کارهای زیادی زیادتر از, از، زیاد حد چیز تو میکنی تقامل اصلا به معنی جور و ستن ودید اون وزل بسیار معروف شدم به دارم رو گفتم من وقت دستو هیچ نخواهم تلاش خدا اما میگه تطاولی که تو کردی به دوستی با من من اون به دشمن خونخوار هیچ نفس ندید شرجیانم به صورت بسیار می‌باید تطاولی که تو کردی به دوستی با من ما قانون دشمن خونخوار پیش نط این مضمون اون از تصمیم سخت گرفته احیانا مالوحسوس ساد از سعدی هم زیباتر میگه کشتی مرا به دوستی و کشتی مرا دوستی و کس نکشته بود زین زا زیرا هرگز به دوشمنی و با. هم که گیسوکت آمو هم تباعت دا به من قفلی دا. من همون روز ارنان که ارینان دل شیدا ولب شیرین یه همون روز که چشکه بشیرین من همون روز گفتم این جوار د Pfizer آن وجود آن وجود آن من همون روز از فرحاد صحات من آن وجود ان ان وجود آن جسم گورد اون که قناعت باقی است اتفاقا که انجزدر به هیچ چشم و سیر نمی و ایده اهل طبع به نعمت دنیا پر نشده همچنان که چاخ به شبنم اگر از شبنم تونست چار رو پر کنه یا اون چیز آن, آن چنیده است دیگه در سهرهای غور بار سالاری افتاد افتاده گفت کشم تنگ تانگی دون جا دار لیا کناعت بود یا, یا خاتیک بود. بنابراین گنج این که انجزار کش می پرد نمی کنه. هفت از بگیرد پاپ چه همچنان در بند از بگیرد. بنابراین اون که حقیقتا گنج واقعی است کناعتی یعنی اون مال دنیا به نظرش نیست. گنجزار کرد نبود، کنجه کناعت باقی است. آن که آن دار به به گدا این دار البته خیلی گدا ها رو بالاتر شاه ها میگونی دیگه ولی از کنم که بیا چیدی گفتی؟ ولی ولی مثلا همون به اتفاقا در نظرم بود بردر میکده رندان قلندار باشند که ستامند و و سر شاهنشاهی خیش سر و برطاقه که دست قدرت نگر و منصف ساحب جا سر ماه میخانه که به بلک پر شده دیوار. عرض کنم که جنج زرگر نبود بود کنج آن که آن داد به شاهان به گدایان اون خوش عروسی جهان از ره داد و این زندگی من نمیدونم چیست که با این نحنمه که مردم دیدن باز برای یه روز باز پریدید می, می بینه بابا رو پریدشو گستن و باز پریدن باید بیا تو جایی میشه پرید پرید نمیدونه پرید نمیدونه واقعا یا می‌بینه پدر مرد یا می‌میدونم می‌کشه طرف رو برای که آها چقدر خود تو این دنیا زنده‌ای که یک خونه یکی رو می‌رید تو که سن و تو ما این می‌دونی حتماً این پولی این است که خیلی سعدی مزامین بسیار زیبا در این زمینه داره یه دنیا زنیست اشفته و دلستان دنیا زنیست اشفته و دلستان ولی یک باکس کس به سر نبرد عهدشون یا میگه که ولی چیز جمیله عروس عروم سردهان بزی خوخش که این عجوزه عروس هزار رامه ها دارد نه خیلی، این مال، این مال, ای مال چیزی، دل دارم در این پیرزدن عشقگری در احماون مال خود ارز کنم که مال سعدی هست، بازم ارز کنم که بل دنیا زنیست، به و بلستان، ولی ایک باکست همین سرده تر نبرد عهد شوهری ها که این همه فرزند زاد و دیگر که کشم دارد از اون مهر مادرش نید جهان از ره سودت نیکن هر که پیوست دو خود است یعنی عمر خود او کابین داد کابین سلام فارسی محره مهر عربی که میگن مهر و خدا رحمت کنه دکتر شایمان سال اول دانشو او درس و مدنی میفر بود و دانشجو که میامد کن امتحان شفایی اگه میگم مهر میگم بفرد استدلالشم او اول گفته بود البته که همه به هم گفته بودن که تو یا پیش نهایی که خب سکوت یا تا همه سال اومدی و نتا که من میگم مهر نمیگم نه پس خیلی خیلی اینگی با مهر رو کسی میگفت مه که به کلام دوبام نمیزوش برسیم عرض کنم که مهر عربی شه و کابیل فارسی شه بله بله بله بس ما ما اصولا سهگه رو در زبان فارسی رحمی امروز یعنی فارسی تهرون کسها رو خفیفتر از فتحه میدونن اخفت می این که بیشتر رو بیکرد یعنی از این چیزا هست سحاوت شده سخاوت شجاعت شده شجاعت مثاله نظاهر اینا بسیار با تمایل داریم به تصمیم باید کابین و کابین به, و به, به هم بدل میشه هر دوش یعنی محر زن میگه که هر که به دنیا بیده هست محریه اون به خود شداد یعنی دنیا چنان مشغول میکن آرامه که یه وقتی دیگه باید بریم و <تصفيق> هیچ کار دیگه خوش عروسی جهان ملاحظا میفرماید که تمام اینها در تحصیب کنه بر مرگ آدمیست که مقامات آلیه هزارت اونیا داشته و خیلی سمت بالا بوده و این دنیا با کسی مثل محمد ابن علی و صحنا که از قدام دوقت دنیا محمد ابن علی که میدرخت شدش از چهره فره ی از اون به اون صورت بسیار درد کشته شد دیگه بعد باقیش که بعد از این دست من و دامن سر و لب جوی خاص اکنون که ثبا مجدهی فروردین دا ظاهرا وقت زمستان طاقم گوشش کف دل حافظ خون شد در فراق رحمت به مام. داد, داد جوانه من به دخل از دانشگاه من افشه دوش گل گفت و پشت نشان <تصفح> من به تحصیب کتاب خودم میخونم اونجا به صورت دیگری مختصرم با اقتلاف مختصری مندتم شد یه از روی این بخون رو هر سری این هم جنبه اخوانی داره بیشتر گل بنافشه رو نمیدونم دیدید یعنی حالا آقای گرامی میگه این ما که بابا با همه چیز سر دو باییم چیز ساخه بلندی داره تقریبا نگاه ساخه مناظر. سرش خم میشه و گلش روی اون خمه چیزی بنافشه های ایرانی به بول مرون با بنافشه تبری که دو بنافشت یک فرنگی و دیگر تبری تبری خورداد اما به شمی مفضو اونا یعنی گوش بیشتری بنافشت دوش به گل گفت و خوشت نشانی دا که تاب من به جهان طرزه فلانی دار تاب خیلی معنی ها داره یکی وقت تابانی که دیگرش فرحنی داغه با کلمه تاب از یه ریش تابیدن میگن آفتاد تابید یعنی گرم کرد و یادمه که آهنگرها و آتشکارها به طور کلی اون شاگردشون وقتی میخواستن بگن دم به دمه میگفتن به یعنی پورا رو گرم تابیدن معنی داغ کرد تاب در به منی پیچ و تاب حالا اینجا تاب من به جهان دره فلانی داد یعنی دره فلانی من رو کرد من رو ناراحت کرد یه جای دیگه هم باز همینو به کار برده تاب بنفشه میدهد دره مرشت ساوی تو لابو دیدهید تو دیوان حافظ تاب بنافشه میدهد یعنی بنافشه رو بنافشه رو فجالت سخ میشه از هر حق حالا این هر دوش میشه هم طره پا داره برای که عوض کردن پیچ داره ساخنی بنافشه هم این که طاق رو به اون محنی داغ کردن و ناراحت کردن میگه میگه دوش به گل گفت و بشت نشانی داد که طاق من به جهان طره فلانی داد طره اون وسمت از پیسوز که پاچین شکن البته میذارن جلو پیشن این کنگره های سر هم میگن ترره با این هم خزینه دست غذا درش ببست و کلیدش به دل دار که این شخص دل میگه دلستان دلستان دیگه که دل من خزینه اسرار بود بابا برد ولی درش بسته بود که به درش میمیخورد کلیدش هم دست غذا دارد بود دلم خزینه اسرار دو دست غذا درش ببست و کلیدش به دل بطارد کلید دسته بود خودمون که دل ستانه دل میگیرد شکسته بار درگاه هتا آمدن طبیعی به مومیایی تو هم نشانی مومیایی اسم قاده که ظاهرن از از منابع نفت استخراج میشه منطور حالت طبیعی داره تحکیباتی که حالشگاه های از نفتی هم نیست بعض منافذ از قدیم بوده که میشنافن حتی نخت خام هم از درس های زمین میومده بیرون گاز که فرابون میومده تمام این آتش گده های دین زردوش روی منافذی بوده که از زمین گاز بیرون میامده و این آتش بوده یعنی آتشی بوده که صورت نمیخواسته این دلیل رو موجزه یه پدیده ایزاتین میزنستن و نیایش بر بعضی جاها هم از مهدن نفت، گاز و گاهی اون مواد آب شور و نه اینا گاهی مواد نفتی اینا توشن کرده به تحاصل به این جرمی اونجا میبسته جور خاصی که اون معروب به مومیایی و این مومیایی کار بسیار مهمش علاج شکستگی بود شکستگی و استفاد رو مثلا مومیایی میماریدن رو شالا تعدیل دار نداره من نمیدونم ولی مومیایی میماریدن و فکر در اکیل گرست میگه دل هسته من گرفت حمدی است نخواهد سنگین دلان مومیاه عرض کنم که میگه شکسته. بار به درگاه تو اومدم نسل شکسته ها برای که یکیزی گفته بود که به مومیایی لطف تو رو نشانی داده بودن یعنی گفته که تو لطف میکنی لطف تو هم در حکم است که شکسته رو درست میکنه این است که من شکسته بار به درگاهت آمدم شکسته بار به درگاهت آمدم که طبیب به مومیایی لطف تو هم نشان دار متاسفانه من یه جای خوندم و بعدم هر چه گشتم دیگه پیدا نکردم و الان هم هم دکات و و دست به دست می چرا یاد نکردم یه جایی نوشته بود در مورد ازمسکی چهار سبتان و یا امثال اینها که مومیایی اصل رو که از معدن می آوردن می و این مومیایی در تقنیت خواهی جنسی چه موجزات داشته بود چه رو برم نوشته برحال ولی من از آنکاندیت می و این مومیایی رو سالی بسید مثلا ده درم سنگ میاوردن یعنی به سنگینه یه درنده درند میاوردن و ارکان دولت در این معدن باز میکردن افسلوم بشه باز میکردن و بعد اتخار میکردن میاوردن میبردن برای شاه و شاه یه مقداری از این میخورد و در نمیگه همیشه قدرت دسمانی بی اندازه داشتون نازی همید و جای دیگری من ندیدم که راجب این مطلب درباره خواست. این خاصیت مومده هایی حرفی شده باشه. ولی در حال مومدیایی و هر حال اگر اطلاعاتی بخواد و دو جور کتاب‌های کتاب های جواهر شناسی که خیلی خیلی زیادم هست در لفن فارسی و عربی قد کتابی درینش کتاب اسم نام الجماهر معرفت الجواهر مال عبود دانبی و عربی استرده. که کتاب فارسی تحت دوغنابه ایلخانی مثلا مال خاشنانسی رو است این بعد جواهر شناسی را جور مومدیایی دواهر که میگم یعنی سنگاه مختلف به مردنی مختلف به جبه مومیایی هم در درگاه از آمدن که طبیب به مومیایی لطه تا هم نشانی دار بر من مسکین و با رقیبان گفت قبلاً حرق کردم که رقیب به معنی مراقب رقیب به معنی کسی که همکار آدم باشه در یا با آدم رقابتش توی بازار تجارت اینو نمیگن تا نمی دوستند یعنی قرابت پای برابر بوده از اون مردی پیرمردی پیر یا پیرزنی یا مرد نرم و نکاری یا فرطی یا کسی که دنبال بارشو میکردن برای اینکه سالن براسون بیرون و او رو میگن از عالم بدر بشه اینو یاد گرفت دیگه گزارش فرمان می و بر رقیبان گفت طریق عاشق مسکین من چه جان داد مقصود حافظ اینجا اگر توجه فرموده باشید استهزاز یعنی معشور من استهزاز رقیب گفتش که عاشق مسکین من چه جان داد اینجا در حقیقت مرادش اینه که من نرسید و دست من اندام منش درست و دلش شاب باد از دولت کی که که یعنی کسی که که یعنی کسی که منم نیست باز جای دیگری خواهد داره توی اون شعر سهر بول بول که آید با سبا کرد یعنی کسی که میگه خوشش با داد و <متحد> که در شرط میشینان را دوا کرد این نصیم صحبت بر کسی که درد شرط میشینان دوا میکنه که چه جن کسی تنش درست و دلش شر از دولت که دست دادش رو دست دادن به معنی توانستن بعدی توی اون شعره بسیار معروف خشنگش از در که من از خود بدر شدم گفتی که از این جهان به جهان دیگر شدم تا رفتنش ببینم و گفتن بشنوم، از پای داده سر همه سم و بسر شدم بزید دستم نداد خوبت رفتن به پیش یار دایی به پای رفتم دایی به سر شدم من چشم از اون چگونه توانم نگاه دار شبتت نظر که دیدن او دیده برشد چون شبتنم و بودم پیش آقا مهرم به جان رسید و سه با ایوه برشدم قصه شبتنم برای سمان رسنی که برشدم و خودتنش درست و دلشت آقاد از دورت که دست دادش و یعنی براش مایستر شد و یارید ناتوانی دار او محبور و معالجات خود کنه نصیح هست سراغ و شاهد شیرین که راضی ها نمی بیشتر نداری؟ اگر سوال در آفرید. بله، اگر دنبال بله، نصف باد داره دری را افزایش این دو و سه فاینست نشست، فاینست نشست چهار باشه فقط اینا قدیمترین نسخه هاست که از در نفت کرده از روش دیگه. تو نسخه غزبینی 495 تا غزل بوده توی نسخه خاندنی شده 486 تا یعنی نورت هم کمتر شد. با وجود اینکه یه مقدار غزل آورده که تو نسخه غزبینی نیست مثلا بر نسخه قرم غزبینی مجده ایده که مسیحا نفسی میآید آید می زن با سه بود کسی مرد نیست برای قضی نمیگه این ما حافظی نیست دیگه که من اساس کارم برای اون نسخه هستند که ها تو اون نسخه آوردم و اون همینه که دستی اون نسخه فقط حافظه باقی نسخه هایی که اینقدر از نفت دردن حافظ ندوستم قضا به دیگه ای حسوس را بیرد دیگه من حالا نمیتونم بله اشکال نداریم هم هرا شاعرم که التزام نیده چون روز که میخواد بمیره تمام غذابی رو تمام کنه باید بمیره ممکن غذا لاده همان داشته باشید شاعر یا آدم اشمس همه آدم های دیگه گاهی هم گاهی هم از ما کم داریش نیده زیاد نداریش دوست همه یه همه سلام این واضح بود برای این که این به نظر من بهتری شام تاک مرم رسیمی و دلائق شو بعد ارز میکنم ارز کنم که همه های سعادت به دام ما افتاد اگر تورا گذری به مقام ما افتاد تمامش مثل این که غنظر است یعنی به یکی از دوستان یا به محشوب یا به یکی کسی به آدمی نداره. نداره که اینجا یک نکته دیگر رو هم بگم من وقتی میگیم یه قزل ارفانیست لزوما از بیت اول تا بیت آخرش ارفانی نیست یا یه قزل اگه آشغانه است از بیت اول تا بیت آخرش عاشقانه نیست و همچنین نگه بگیم ستایشی کسیه بازم از بیت اول تا بیت آخرش ستایش نیست قزل قزل است فرای بیان احساس شخصی شاعر هرچی دلش میخواد اونجا می حافظ این مطلب خیلی را کرد کار این سر کار اول کلمه هماست هما جز شکاری است. یعنی مرمان گوشتخار شکاری که شاید این بود کن به طور کلی مثل, مثل استنداران مثل ماهیان دو دسته اصلا یه دسته گوشت یه دسته گوشت, گوشت نیستن که پرندگان معمولا دانه خورن. گوشت باز دو دسته یه دسته زنده خارم یعنی شکارگرم یه دسته مردار همینجور که پرنده های دانه از گنجهش و یک چیز کوچیک خیلی کوچیک که از است که مرگ اینجا هست که من گاه میرم لبه دریا را برم میبینم این مرغ و این مرگ تمامه حیکلش و اندازه یک بند این انگشت من نیست و نوک جلازی هم داره به قدری سبوکی که پر میزنه میسته وسط هوا و سیره گولات هست کل این حیبون رو واقعا ای ده گرم و از از قلب داره ریه داره دون داره همه دستگاه داره و حیلت مرد برحال باقیان کردیم که که ده تا ازین و بیس تا رو هم یه گنجش نمیشه یه چیزه بله بله بله خب که قد بعضش همون میشه بله زبون مزیده که ترس کنم که همجوری که حیوانات دانخار از ریز ترین هست تا بوغلمون چطورها قلبتا استثناست بوغلمون گنده ترینه میدونین که بوغلمون مال امریکا هم بوده از امریکا آوردن به سر کاره های دیگه بیا شما بوغلمون نبودینه من داشو بوغلمون حفظ کردم یا نه؟ باشه، هیچ‌طور. باز کنم که بوغلمون اصلا یعنی رنگارنگ. البته اینم که میگم بوغلمون اگر بوغلمون نر دیده باشید بوغلمون از خانواده تابوسه. با کی چتر میزنه؟ چتری کوچولوی داره تابوس چترش بزرگ و خیلی ولی بوغلمون چتر کوچیکی داره. میزنه دم دومشو با تو این بوشتای زیری گردنش نه رنگ میشه سبز میشه سرخ میشه صورتی میشه سفید میشه رنگ عوض میکنه و اون زایده بالای منقارش آبیزون میشه تا روی نوکش حالت فحله و حالت جفتجویه این حالت این به واسطه رنگا رنگ شدن این بوستای زیری این بهش میگم بغنم و الله بوغل اون اسم هرباست هربا یا آفتاب پرست <تصفح> یه رو سوشماریست همه شما هم دیدین رو درخت و خاصیت استطاع عجیب و غریب دلینه یعنی در محیط صفت صفت دارد محیط خرمه فرمه میشه دارد محیط خاکی خاکی میشه پورا رنگ عوض میکنه اونم به علاقه رنگ کردن موقلمون به اون میگفتن وقتی که این مرغ ترکی از امریکا آمد به آسیا پارسی درمونه از جوش هم برای که رنگ و رنگ شد. این رسم من نمیدونم که گذاشته من اطلاع ندارم نمیدونم آه برای اینکه از, از های شرخان آمده بله بله ارز کنم این دارستا خیلی بامزه است پرداخال ما حالای ارکلامو یجور بر کلام پرداخال ما میدون که درخ ندیره پرداخال باید پیون بزنن لیمون شیرین رو به نارنج پیون بزنن تنها پایه ها پایه نارنج به پیون بزنن که پر پرداخال بنابراین تو ها تقم پرداخالو بکارین در نمیادی و میدارت پرتهانی ما هم نداشتیم پرتهانی هیچ جا نداشتن اول اروپایی ها این کار یاد گرفتن این پیمند زدن و. و بعد از اروپا آمد به آسیا در ایران در دوره آمدن پرتهانی ها در جنوب جخل جفارس و جزیج و برموس و اینا اونا آوردن و پیمند زدنش یاد دادن به همین دلیل است و پردهار اسم کشور پردهار در حالی که در پاکستان همین میوه از جزیره مالت اومده اونجا اسمش از مالتا <تصفح> اسم سر پردهار در هند و پاکستان از مالتا مالتا یعنی از مالتون این هم که به اینا میگن مرکبات این هم هنزار عددی دارتون بگم زرار نداره به اینا میگن مرکبات دی مون اورنج تو فلور بوکو تو هالو گریپ تو و نارنجی و در دوره صفویه به پیوند درخت پیوند رو گفتن ترکیب ترکیب به در جز پیوند و پیوند زدن درخت گفتن تعقیق فناوری مرکبات یعنی میوه‌هایی که بر اثر پیوند به وجود میاد این اسمینه شده مرکب اینا مال حالا برگردیم سر بوغلمون که هشترخان شد اونجا و اینا زدیلش اینه بعد برگردیم سر باز اون تیز از ایوانات دانخار هست بزرگ بمزه بوغلمون هست دا اون جانور بسیار کتک شکاریاشون هم از همین اندازه هست اقاب همین قدر هست اقاب پراش باز میکن در حدود ست متره پرش باز میکن با ایمونات شکاری که گلجیش خوراک شد که بشون میگن باشه به باز حود خودم از رحمه بر به تاج حود خودم از رحمه بر که باز سدید تو باشه در خیلی هر سید مختصر مرمز حالا خواهجه است باشه مرغیست. شاید یه نوع غیرقی از غیرقی هم کچیتر. نوع بزرگترش که انوزه کبوتر او اینا هست شاهین بهش میگن که کبوتر رو کپ کب با ایناش کن باشه لفظ عددیه قرقی بهش میگن تلکیشی عرض کنم که این شاهین هم چیز حجیبیست این وقتی خودشو میزنه تنه به کبوتر این تنه میزنه تمام پر این حیبون میری که از ترس تا هم پراشد کنم که بزرگتر از این از باز انواع افثام داره این مرغای شکاری رو میگیرن تربیت میکنن باز از شاهین از تنگوره تقرل ترخه اینا همه اسم این مرغای شکاری که تربیت میشن البته اوقا تربیت میشون و این خیلی موقعا موقع متوسطه تن از اندازه موقع خانگی خود کوچکتر تا اندازه که بودتر که تربیت اینا کار دوشباریست خیلی فوق العاده داستان ها داره بره به طوری که الان کتاب ها دارن این ها کتاب های بازداری یعنی در شد نگه داشتن تربیت کردن و بزرگ کردن باز، بازداری یا بازیاری بازیار یا بازدار و اشکال که پنجه اینا خیلی قبیه دست تا تمام بس رو میده خون دست میتونه بیرون که یه چیزی دستشون که روی اون میسته برحال اینم باز اونم اقابه بعد حیوانات مرداخار اینا اینا اشکالشون یه که بندشون نمیاد از زنده خوردن ولی پنجه شون زهید زورش کمتر کرکست نیست اسم درستش داله اینای که گردنش کچله مونده رو به خیلی بریختم هست و تو بیابونهای تهرون زیاده اینا داله اسم عددیش دال زورش و منگارش و قدرت پروازش عبداً از اوهاب کمتر نیست بلی پنجهش ضعیفه و نمیتونه سید رو بگیره ورداره بره اینه که موضوع پردن عمق میگذاره هومه جوز این ترسله مرگان جوز مرگان مرده خواهی یعنی قند باز و شاهین و ایناست ولی مردار میخوره و واکرمال دستو فیگونه خیلی بیریختی همست همونجور که چرکست دال فیگونه بیریختیه هومه هم فیگونه بیریختیه هده ای باک شما هم مرگ رو میگره شما که مشاله خوشگلین هست خوشگل هم خوشگل شدید ارض کنم که چه خبر کردنی؟ کیا آقای دوستان آقای مولا خیر بده آقای گیرامی؟ را. اول کلوخ اندازو هم شبونه شده ایشون بعد کنم که اگر یه وقت تصویر اما رو من من دارم سکونه یعنی به یک کتابی پاپ شد از طرف تصمان خیلی کارا گوشی کناره نفتت رو در دوره گذشته که نه رژیم خبر داشت نه مردم خبر داشت یک کتاب چاپ شد سازمان محیط زیست یک کتاب چاپ کرد به پرندگان ایران این پرندگان ایران البته نواد در ساتش هم پرندگان که در سایر کشور های هم هست و توی اروپا مثلا احیان هم هست و اونا رو فراغت متخصصین فاکسین دیگاه کردن فور بشو تشخیص دادن که این چرات فردی یا نداری و الا قسمت اعظمش هموناست یه قسمت هم مرغانی است که مخصوص ایران بوده اون رو بهش اضافه کردن که تا از انگلیسی ترجمه شده و تنظیم شده نام برندگان ایران ولی اسکندر فیروز موجب شد و خدا اون بده شوهر قاهر من احمد الجزایری رو که او از انگلیسی ترجمه کرد به فارسی اون تو عکس رنگی هما اون تو هست و من به همین سوارقایم بودم آقایش بزنم یه فوتوکوپی رنگی از این عکس هما بگیر و برای من بفرست وقتی فرست دار دیدم بهتر تو که این تغاضر نمی کردم <تصفح> <تصفح> بله من الان نمتونم من نمتونم بل ارز کنم که به هر حال از قدیم تظهر بودن این چون گوشگیر اون نمیاد و اینا اگه سایش برد برای کسی بیفته موجه سعادت میشه و به همین جلیه گفتن همای سعادت و بسیار بسیار داستانها داریم درست به همین ترتیب که باز رو پر میددن و که همین تر حدگی میشه دو بردن پادچه ها که چیز میکردن یه دسته نظیرین مثل که در بولستان سعدی هم هست که میکرد که اون بود تمام عمرش کشنه و تشنه و بدبخت و روحه بر روحه دوخته و لغمه از گوشه و یه روزی از در شهری رسید بازی پرواز شد روز سرگی نشست و وشتش بردم شاهر شد شاهر شد و نشست کردن به امریکت و فلان این حرفا بعد از تصادف روزگاری یه دوستی رسید دوستی رسید و خبر شد که این بابایی که گدایی میکرد به شاه ربط و سلام و علیک و اینا رو خیلی ازش پذیرایی کرد و خیلی بهش محبت کرد و برگو خب الحمدلله میگیرم که حال روزت خوب و خیلی خوشحالم که بس تو میگیرم که مراتم اینا خبه برادم چه مراتتری جای تصوییت عوازی تحنیت برن که اون روز خم نانی داشتم و اون روز اندوه جهانی یعنی تمام امریکت بدبخش میگردن من برحال یه چه این قصه ای در ا اینست که میگه هما یه سعادت به دام ما افتد که اگر تو را گذری بر مقام ما افتد یعنی گذر کردن تو بر مقام ما برای من در حکم اینست که سایه هما از و حتی طرف قضلی نمیتونی نخلی. طرف قضلی شایدی دوستی باشه دوستی بسی حافظ با آدم های جاسنگین روزگار خودش همه توستی و آشنایی مفصل داشته رفت و آمد و پیر از این هم نمیشه شدری به این خوبی قطعا دستش با ساز آشنا آوازی به اون خوبی مرد با کمال با تحصیلات به اون بالایی این رو دست بکنه اینست که با همه ظاهرن آشنای اونا یه اوج سعادت به دام ما اگر تو را گذری بر مقام ما خوباموار برند آزم از نشاد کلاف اگر ز تو عکس به جامعه اینجا تو این به تا خواهج خوبام کرد پس همه دیدید دیگه توی ها خوباموار خوباموار چیزی دیدید یک کلاف بزید پناهی کلاش منظوبه له چی یعنی داریش نیومونی؟ <تصفح> دیکه کلان منظوبه له سرامی موند زیرش. ولی هو باق کلاش منظوبه له چی داریش نیوم؟ <تصفح> <تصفح> گه هو باق، بار، بر... ما من... کلاش هم منظوبه له ولی که هو باق می تری که که هو باق، بار، پرندگار زمان، نشان، کلا. <تصفح> اگر ضروریه تو اکسی به جام ما جام مثل و باب نسبت این تفاد کردن، این یه که اگه خیلی بکنند، که اگاهی که راه ندارن برای خاکبوسی که ای استفاد سلام ما افتد کی ای ممکنه تنگین یه خود لطف رو هم بکنی که ایجازه رو من سلام بیام بکنم کی ای استفاد مجال سلام ما افتد بودتان صدای لبت رود خیال بی بستن خیال بستن یعنی خیال کردن تسبب کردن تو جان تدایه لبت شد خیال میبستم که قطریز زلالش به کام ما افتد میکنم که جانو که دادم داقد یک خطره از شربته به سال به کام ما میرسه خیال حال ظرفتو گفتا نخود خود ظرفت نه خود ظرفت خیالش خیال ظرفتو گفتا که جان وسیله مسافت که این شکار قراغان به دام ما آشده چیزی مهم میبره ما نگوید خیال ظرفش کن به ناامید با این حال حافظ همیشه مبشر امیده شاعر خوشبینه اهل امید دادنه به ناامیدی از این در مرو بزن فعالی قبط که قره دولت به نام ما اوشتن و ودیه یعنی شاید خاک کوی تو هر دم که دم زن از حافظ نصیم گلشن جان در مشام ما اوشتن یعنی نصیم گلشن جان بوی خاک کوی توی یه دیگرامین رو بخونه ولی گیا سیران ویلیه برای که فرد ولی در ببار آرد تحال دشمنی بچند چی آرد به اطلاف را کرد که در درست جانو یارشم ازش میخوام ولی نمیتونم. از دو ما ماه کرده دیگه و شما از ماه دادن ماه. خود بعد که داره اونا. وقتی که مهمان خرابات هستی با خراباتیان درست تا کن برای که اگه محرومت کنن اصباب درد سرت میشه که درد سر, سر کشی جانا گرد مستی خمار آقا خمار رو به تفصیل راجعه صحبت کردم و گفتم که چشم خمار اینا معنی نداره خمار یعنی صدا الخمر درد سر ناشی از مستی بنابارین چشم بعد بگن مخمور یا بگن چشم خمارین چشم خمار نمیشه بگن با اقل در عددی البته الان مسترح شده میگن چشم خمار کرد مثلا درست نیست تو مهمان خراباتی به عزت باش رندان که درد سرکش اینجا ناگر از مستی خمار آراد یه نقطی دیگه بگم اینجا او که الان در زبان فعیلی ما درد سر با سردرد فرف کرده درد سر چیز دیگه است سردرد به چیز دیگه همچنان که درد دل با دلدرد فرف کرده درد دل به کلی چیز دیگه و دلدرد به کلی چیز دیگه توضیح لازم نیست ولی در اون روزگار درد سر رو جای سردر، می آوردن این که اگر به معنی درست سرم بگیریم درسته اینجا که اگر مصدی خمار برای زیره اصباب زحمتت می شیم اصباب درست سرم صحبت به معنی دوستی و افاقه شب صحبت فریمت داره اینم که حرف دادن می گم صحبت باید به معنی دوستیه برای اینکه تا دوست نباشادن با کسی حرف نمی <تصفيق> و این دو دونفجه که حالا اسمی گفتن مصاحبه این از چیزای چیزهای روزکاری دلیل اینکه همین کلمه رو وقتی که در مصاحبت آقای شاقی رفتیم به مثلا لس انجلس یعنی در دوستی و رفاقتی مصاحبت مصاحبم هم مصاحبته یکیه مثلا این تش ظاهر شده اونجا تش داهر نشده مصاحبه و مصاحبت یکیه ولی مصاحبت و عنی دوستی رفاقت بکنی به مصاحبه به گفته بفتگوی دو به در حالی که مصاحبه رو خود عرب میگه مفاوضه نمیگه مصاحبه این تدیرون رو عرب خودش میگه مفاوضه و ما بهش مصاحب. از هم صحبت کردن خودمون یونیا ها صابتن یکی از اینا همینطوری مراجعه و مراجعه اینا دوتا یکی